فصل در روزنا وقتی از رفتن به بون سر باز زدم و ماری میخواست به هر قیمتی شده برود و هوای کاتولیکی استن کند برای اولین بار گفت که از من میترسد توضیح او برای رفتن به بون قانه کننده نبود و به همین دلیل گفتم در روزنا هم به اندازه کافی کاتولیک هست ولی او جواب داد من او را نمیفهمم و نه نمیخواهم که بفهمم دو روز بود که در روز بودیم و من تا قرارداد بعدی سه روز دیگر بیکار بودم. از صبح باران میآمد و سینماها فیلمی که برایم جالب باشد نمایش نمیداد. من حتی پیشنهاد بازی منچ را هم ندادم. ماری روز قبل انگام بازی ویافه پرستاران کار اطفال را به خود گرفته بود. ماری روی تخت خواب دراز کشیده بود و کتاب می خاند. من پای پنجره ایستاده بودم، سیگار میکشیدم و به خیابان هامبورگ و میدان جلوی ایستگاه راه آهن نگاه میکردم مردم دوان دوان از ایستگاه بیرون میآدند و زیر باران خود را به تراموهای در حال حرکت میرساندند. ما آن کار را هم نمی بکنیم ماری مریض بود بچه نیانداخته بود ولی چیزی شبیه به آن اتفاق افتاده بود. من درست از قضیه سر در نیوردم و کسی هم به من توضیحی نداده بود. گمان کرده بود آبستن است اما آبستن نبود و صبح چند ساعت در بیمارستان بستری بود و بعد هم مرخص شده بود ماری رنگ پریده خسته و عصبانی بود و من به او گفتم مسافرت با قطار برایش خوب نیست خیلی دلم میخواست بدانم درد کشیده است یا نه ولی او در این باره با من حرف نمیزد و تنها به شکلی غریب، آزاردهنده و عصبی گریه می کرد. در خیابان پسرکی را دیدم که از طرف چپ به سوی میدان جلوی ایستگاه می‌آمد. سرتاپا خیس شده بود و در زیر باران سیل‌آسا کیف مدرسهاش را باز کرده بود و جلوی صورت گرفته بود. در کیف را عقب زده بود و با ای آن را جلوی صورت گرفته بود که من نظیر آن را فقط در تمثال‌های دیده بودم که از پادشاه مقدس میکشند و آنها را در حالی نشان میدهند که کندر و طلا و بخور تقدیم مسیح تازه به دنیا آمده میکنند. از پنجره می توانستم جلد کتاب های او را که در حال جدا شدن بودند ببینم. خیافه پسرک مرا یاد هنریته میانداخت. از خود گذشته، از دست رفته و روحانی بود. ماری همانطور که روی تخت دراز کشیده بود پرسید: به چه فکر میکنی؟» گفتم: هیچ. پسرک را دیدم که آرام از میدان گذشت و در ایستگاه گم شد. نگران پسرک بودم چون میدانستم باید جزای پنج دقیقه‌ای که دیر کرده بود را بپردازد. باید غیافه مادرش را در حال ناسزاگویی و چهره پدرش را در حالی که به فکر فرو رفته تحمل کند. در خانه آنها پولی در خانه برای خرید کتاب و دفتر نو نیست. ماری دوباره پرسید به چه فکر میکنی؟ میخواستم دوباره بگویم هیچ ولی به یاد پسرک افتادم و برایش گفتم که به چه فکر میکردم. گفتم که چطور پسرک وارد خانه میشود؟ خانه‌ای که در دهجدی در همین نزدیکی است و اینکه چون هیچ کس حرفش را باور نمی‌کند به احتمال زیاد به آنها دروغ می‌گوید که زمین خورده و کیفش توی گودالی پر از آب افتاده است. یا اینکه چند لحظه کیف را زیر ناودانی زمین گذاشته و درست در همان لحظه آب از ناودان راه افتاده و توی کیف رفته است. تمام اینها را برای ماری با صدایی آرام و یک نواخت تعریف کردم. او از روی تخت خواب گفت منظورت از این مزخرفات چیست؟ گفتم تو پرسیدی به چه فکر می من به همین فکر می کردم. ماری داستان پسرک را باور نکرد ما تا آن زمان نه به هم دروغ گفته بودیم و نه همدیگر را به دروغ گویی متهم کرده بودیم. من چنان عصبانی شدم که او را وادار کردم از جایش بلند شود کفشهایش را بپوشد و با من به ایستگاه بیاید از عجله که داشتم فراموش کردم چتر بردارم خیس شدیم و پسرک را هم پیدا نکردیم. سالن انتظار را گشتیم حتی به دفتر ایستگاه رفتیم. اق از مأموری که جلوی نرده ایستاده بود پرسیدم آیا چند لحظه پیش قطاری حرکت کرده است یا نه؟ مردک گفت بله دو دقیقه پیش یک قطار به طرف بمت حرکت کرده است پرسیدم پسرک خیسی با موهای بور را ندیده که سوار شود مرد مشکوک شده پرسید برای چه می پرسید؟ گناهی از او سر زده؟ گفتم نه فقط میخواام بدانم سوار شده یا نه من و ماری سرتا پا خیس بودیم و او با بدگمانی سر و پای ما را برانداز پرسید شما اهل راین هستید؟ ولی مثل این بود که میپرسد آیا سابقه یه داریم؟ گفتم بله گفت این نوع اطلاعات را فقط با اجازه موافقم میتوانم به شما بدهم حتما یکی از اهالی راین به او بد کرده بود شاید انگام جنگ من یک کارگر صحنه را می شناختم که یک برلینی در جنگ سرش کلاه گذاشته بود و حالا با تمام برلینی ها مثل دشمن خونی رفتار می کرد. یک بار وقتی که یک زن هنرمند برلینی قصد ورود به صحنه را داشت ناگهان چراغها را خاموش کرد زن به مانه خورد و پایش شکست اما نتوانستند ثابت کنند که او چرا را خاموش کرده و اعلام کردن اتصال سیم بوده است ولی من شک ندارم که چراغهای های صحنه را او خاموش کرده بود چون دخترک اهل برلین بود و یک برلینی در جنگ سرش کلاه گذاشته بود مأمور ایستگاه uzنابروک با چنان قیافه به من خیره شده بود که ترس برم داشت گفتم ما شرط بسته ایم. کار غلطی کردم چون دروغ گفتم و وقتی دروغ میگویم هر کس می تواند از قیافاً بفهمد که دروغ گفتم. گفت: عجب شرط بستهید هوایی از وقتی که راینی ها شروع به شرطبندی بندی کنند فایده نداشت لحظه ای به این فکر افتادم که تاکسی بگیرم و به بممت برویم تا پسرک را موقع پیاده شدن از قطار به مارین نشان دهم ده ولی این کار هم بی فایده بود چون ممکن بود پسرک قبل یا بعد از بمت در دهکهای پیاده شود. وقتی به هتل رسیدیم خیس بودیم و از سرما میلرزیدیم. ماری را به کافه هتل کشاندم کنار پیشخان رفتم دستم را روی شانه ماری گذاشتم و کنیاک سفارش دادم صاحب کافه که صاحب هتل هم بود ترحی به ما زل زده بود که انگار میخواهد پلیس خبر کند روز قبل ما ساعتها منچ بازی کرده بودیم و به رستوران هتل سفارش داده بودیم برایمان ساندویچ ژامبون و چای به اتاق بیاورد صبح ماری به بیمارستان رفته بود و پس از چند ساعت با رنگ پریده برگشته بود. صاحب بار چنان گیلاس های کنیاک را جلوی ما گذاشت که نیمی از آن ریخت و نگاهش را طوری از ما برگرداند که گویی ما را به مبارزه می طلبت. از ماری پرسیدم داستان پسرک را باور نمیکنی؟ گفت: چرا؟ باور کنم. ولی این حرف را به خاطر همدردی با من گفت، نه این خاطر که واقعا باور کرده بود. من به شدت عصبانی بودم، چون قدرت و جرأت این را نداشتم که از صاحب بار به خاطر ریختن کنیاک‌ها بازخواست کنم. کنار ما نرخری ایستاده بود که موقع خوردن آبجو صدای گلویش را میشد شنید. اربار که لیوان آبجو را سر میکشید دور لبهایش را می لیسید و به من نگاه می کرد طوری که انگار میخواهد با من صحبت کند. من از صحبت با آلمانی های نیمه مست در یک سن معین وحشت دارم. آنها فقط درباره جنگ حرف میزنند. به نظر آنها جنگ پدیده بینظی و با شکوه بوده و وقتی حسابی پاتیل شوند معلوم می‌شود که قاتلند و کشدار انسانها برایشان کاری ندارد. ماری از سرما می لرزید و وقتی من گیلاس های خالی را روی پیشخان به طرف صاحب بار سر دادم خیره به من سرتکان داد از اینکه صاحب بار این بار بدون اینکه که کنیا بریزد گیلاس ها را جلوی ما گذاشت احساس آرامش کردم این کار فشاری را که احساس بزدلی به من داده بود از بین برد مردک کناری آبجویش را هرد کشید و با خودش شروع به حرف زدن کرد می گفت سال چهل و چهار سطل سطل آبجو جوب و کنیاک می چهل و چهار سطل سطل باقیاش را هم به خیابان میریختیم و آتش میزدیم تا یک قطرهش هم برای بی ارزها باقی نماند خندید یک قطرهش هم نماند وقتی دوباره گلاس ها را به سمت صاحب بار سراندم او فقط یکی از آنها را پر کرد و با نگاهش پرسید که دومی را هم پر کند یا نه تازه آن وقت بود که فهمیدم ماری رفته است سرم را به نشانه تایید تکان دادم او گیلاس دوم را هم پر کرد هر دو را سر کشیدم حتی امروز هم از اینکه پس از آن دو لیوان توانستم بار را ترک کنم خوشحالم ماری روی تخت دراز کشیده بود و گریه میکرد وقتی دستم را روی پیشانیش گذاشتم هرچند آهسته و با ملایمت آن را پس زد کنارش نشستم دستش را در دست گرفتم دستش را پس نکشید خوشحال شدم هوا تاریک شده بود و من قبل از اینکه شروع به حرف زدن کنم یک ساعت تمام دست او را در دست داشتم و کنارش نشسته بودم آرام شروع به صحبت کردم و داستان پسرک را یک بار دیگر تعریف کردم و او دستم را فشار داد گویی میخواست بگوید کافی است هر را باور میکنم از او خواستم دقیقا بگوید که در بیمارستان به او چه کردند گفت مسائل زنانه است و چیز مهمی نبود. ولی کسیف بود مسائل زنانه تکانم داد برایم تنین اصرارامیز و, و وحشتناکی داشت من و ماری سه سال با هم بودیم و من اولین بار بود که چیزی در مورد مسائل زنان میشنیدم. میدانستم زنها چطور باردار می ولی از جزئیات آن بیخبر بودم و وقتی خبردار شدم که 24 سال سن داشتم و سه سال تمام با ماری بودم ماری وقتی دید که تا چه حد بی تجربه هم خندش گرفت سرم را روی سیناش فشار داد و گفت تو دوست داشتنی هستی؟ واقعا دوست داشتنی؟ کس دیگری که در این باره برایم حرف زد کارل امونز همشاگردی هم بود او دائما من از گرس های حرف میزند که گویا برای جلوگیری معجزه میکردند بعدا به داروخانه رفتم و برای ماری قرص خواب خریدم کنارش نشستم تا خوابش ببرد تا به امروز هم نمیدانم که آن مسئله زنان چه بلایی سرش آورده بود. صبح روز بعد به کتابخانه رفتم و در دائره آنچه را که در این باره نوشته بود خواندم و خودم را سبک کردم. نزدیک ظهر ماری تنها به طرف بن حرکت کرد و فقط یک کیف همراه برد. حرفی از اینکه همراهش بروم نزد، فقط گفت: "پس فردا در فرانکفورت همدیگر را خواهیم دید." بعد از ظهر وقتی از اداره پلیس آمدن خوشحال بودم که ماری رفته است، هرچند که نبودنش بسیار ناراحت کننده بود. من همیشه ماری را به عنوان زنم معرفی می‌کردم و ما حد اکثر دو یا سه مرتبه از این بابت به مشکل برخورده بودیم. فکر می می‌کنم صاحب هتل به پلیس خبر داده بود. در اوزنبروک کار به جای باریک کشید. یک پلیس زن و یک مرد با لباس شخصی آمدند. بسیار معدب و خوشرو بودند و بهقدری قدری نزاکت به خرج دادند که به نظر می آن آنها یاد دادند روی مردم اثر خوشایند بگذارند. بعضی از رفتارهای مؤدبانه‌ی پلیس برای من ناخوشایند است. حتی سیگاری را که تعارفش کردم قبول کرد و در این ضمن همکارش اتاق را زیر چشمی برنداز میکرد. پرسید. چیز درکن دیگر در اینجا نیستند؟ گفتم. نه او به بن رفته است و پس فردا در فرانکفورت دوباره یک دیگر را خواهیم دید. گفت. شما هنرمند سیرک هستید؟ گفتم. بله. هرچند درست نبود ولی بله گفتن به نظرم آسان تر آمد. زنک گفت درک می کنید که ما موظف به آزمایش مسافرانی که از این شهر عبور می کنند هستیم به ویژه زنانی که جنین سخت می کنند. و در حین صحبت صرفهی خفیف کرد گفتم من همه چیز را می فهمم. من درباره سخت جنین در دائرت المعارف چیزی نخوانده بودم مردک نمی خواست بنشیند و همینطور طور زیر چشمی و بدون اینکه کسی متوجه شود اتاق را برانداز می کرد زنک پرسید آدرستان کجاست؟ من آدرسم رو در بون به آنها دادم. بلند شد. همکارش نگاهی به گنجی لباس که درش باز بود انداخت. اینها های دوشیزه دورکم است؟ گفتم بله. بعد نگاهی معنیدار به زنک انداخت و هر دو شانه هایشان را بالا انداختند. مردک به فرش کف اتاق خیره شد، زانو زد و ای را که روی فرش بود به دقت نگاه کرد. نگاهی به من انداخت، گویی منتظر بود به قتلی که کردم اعتراف کنم. بعد هر دو از در بیرون رفتند. هر دوی آنها تا آخر نمایش کاملا مودب بودند اما به محض اینکه از اتاق بیرون رفتند با عجله چمدان ها را بستم صورت حساب خواستم گفتم از ایسکا باربر فرستادند و با اولین قطار حرکت کردم حتی پول آن شب هتل را هم دادم چمدان ها را به آدرس فرانکفورت فرستادم و خودم سوار اولین قطاری شدم که به جنوبی رفت ترسیده بودم و میخواستم هرچه زودتر آنجا را ترک کنم. موقع جمع کردن اساسیه دیدم که حوله ماری پر از لکه های خون است حتی در ایستگاه قبل از حرکت قطار میترسیدم نکند کسی از پشت دست بر شانم بگذارد و مودوانه بپرسد اقرار میکنید؟ در این صورت همه چیز را گردن گرفتم. نیمه شب گذشته بود که قطار از بن رد شد حتی به این فکر هم نیافتادم که پیاده شوم. وقتی در فرانکفورت پیاده شدم ساعت چهار صبح بود بلا فاصله به یک هتل گران قیمت رفتم و به ماری تلفن کردم. میترسیدم خانه نباشد ولی او فورم پای تلفن آمد و گفت: هانس خدا را شکر که تلفن کردی، نمیدونی چقدر نگران بودم." پرسیدم: "نگران؟" گفت: "بله، به که تلفن کردم، گفتند از آنجا رفته ای. سریع خودم را به فرانکفورت می‌رسانم." حمام کردم، دستور دادم صبحانه را به اتاق بردند. خوابیدم و حدود ساعت یازده. ماری از خواب بیدارم کرد مثل اینکه به کلی عوض شده بود خیلی مهربان و خوشحال بود وقتی پرسیدم به اندازه کافی هوای کاتولیکی انستن شاخ کردی خندید و مرا بوسید جریان پلیس را برایش نگفتم